مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد چهل امتحان کردن مصطفی علیه السلام آیشه را که چپنهان می شوی؟ مشو که اعما تو را نمی بیند، تا پدید آید که عایشه از زمیر مصطفی علیه السلام واقف هست یا خود مقلد گفت ظاهر است. گفت پیغمبر برای امتحان، او نمی بیند تو را. کم شو نهان کرد اشارت آیشه با دستها او نبیند من همه بینم ورا غیرت عقل است بر خوبی روح پرز تشبیهات و تمثیل این نسوح با چنین پنهانی کین روح راست عقل بر این چونین رشکین چراست؟ از که پنهان می کنی، ای رشک خو آن که پوشیده است نورش روی او می رود به روی پوش این آفتاب فرت نور اوست رویش را نقاب از که پنهان می کنی، ای رشک کافتاب از وی نمیبیند اثر رشک از آن افزون تر است اندر تنم کس خودش خواهم که هم پنهان کنم ذاتش رشک گران آهنگ من با و چشم و گوش خود در جنگ من چون چنین استت ای جان و دل، پس دهان بربند و گفتن را بهل. ترسم ار خاموش کنم آن آفتاب، از سوی دیگر بدراند هجاب. در خموشی گفت ما از هر شود، که ز من آن مایل افزونتر شود، گربه غرد بحر غرش کف شود جوش اهببتو به ان اعرف شود حرف گفتن بستن آن روزن است عین اظهار سخن پوشیدن است بلبلانه نعارزن در روی گل تا کنی مشغول شان از بوی گل تا باقول مشغول گردد گوششان، سوی روی گل نپرد هوششان. پیش این خورشید بس روشن است، در حقیقت هر دلیل رهزن است. حکایت آن مطرب که در بزم امیر ترک این غزل آغاز کرد. گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم. از این آشفته بیدل چه میخواهی نمیدانم؟ و بانگ برزدن ترک که آن بگو که میدانی و جواب مطرب، امیر مطرب آغازید پیش ترک مست در حجاب نغمه اسرار عله است. من ندانم که تو ماهی یا وسن من ندانم تا چه می خواهی زمن؟ من ندانم که چه خدمت آرمد تن زنم یا در عبارت آرمد این عجب که نیستی از من جدا من ندانم من کجایم تو کجا من ندانم که مرا چون میکشی گاه در بر گاه در خون می همچون همچنین لب در ندانم باز کرد می ندانم می ندانم ساز کرد چون زهد شد می ندانم از شگفت ترک ما را زین حراره دل گرفت بر آن ترک ترکو دبوس کشید تا علیه بر سر مطرب رسید. گرز را بگرفت، سرهنگ بده است. گفت نه، مطرب کشی این دم بده است. گفت، این تکرار به حد و مرش، کفت تب را بکوبم من سرش. می میندانی گه مخر، همیدانی بزن مقصود بر. آن بگو ای گیج که میدانیش. می ندانم می ندانم در مکش. من بپرسم که از کجایی هی موری تو بگویی نه بلخ بلخو نه هری نه از بغدادو نه موصل نه تراز درکشی در, در راه دراز. خود بگو من از کجایم، باز ره. هست تنقیه منات، اینجا بله. یا بپرسیدم چه خوردی ناشتاب، تو بگوی نه شراب و نه کباب، نه قدید و نه سرید و نه عدس. آن چه خوردی آن بگو تنها و بس؟ این سخنخواهی دراز از بحر چیست؟ گفت مطرب زان که مقصودم خفیست. میرمد اثبات پیش از نفی تو. نفی کردم تا بری بو. در نوا آرم به نفی این ساز را. چون بمیری مرگ گوید راز را. تفسیر قوله علیه السلام موتو قبل ان تموتو. بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. جان بسه کندی و اندر پردهی، زان که مردن اصل بود، ناوردهی، تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان بان نایی بابام. چون ز پایه دو پایه کم بود بام را کوشنده نامحرم بود چون رسن یک گاز ز ست گز کم بود آب اندر دلب از چه کی رود. غرق این کشتی نیابی ای امیر تا به ننهی اندرو منل اخیر من آخر اصل دان کو تارق است کشتی وسواس و غیرا غارق است آفتاب گنبد ازرق شود کشتی چونکه چون که مستغرق شود چون نمردی گشت جان کندن دراز مات شو در صابح ای شم ای تراز تا نگشتند اختران مانهان دان که پنهان است خورشید جهان گرز بر خود زن منی در هم شکن، زن که پنبه گوش آمد، چشم تن. گرز بر خود میزنی، خود ایدنی، عکس توست اندر فعالم این منی. عکس خود در صورت من دیده ای در قتال خیش بر جوشیده ای. در قتال خیش بر برجوشیده همچون آن شیره که در چه شد فرو عکس خود را خسم خود پنداشت او نف زده هست باشد بیشکه تازه زد زد را بدانی اندکه این زمان جز نفع زد اعلام نیست، اندر این نشعت دم بیدام نیست، به هجابت باید آن ای زول باب، مرگ را بگزین و بردر آن حجاب نه چونان که در گور روی، مرگ تبدیلی که در نور روی، مرد بالغ گشت، آن بچگی بمرد رومی شد، سبغت زنگی ستارد خاک زر شد، حیعت خاکی نماند غم فرح شد، خار غمناکی نماند مصطفی زین گفت که اصرار جو مرده را خواهی که بینی زنده تو می رود چون زندگان بر خاکدان مرد مرده و جانش شده بر آسمان جانش را این دم به بالا مسکن است گر بمیرد روح او را نقل نیست زان که پیش از مرگ او کرده است نقل این به مردن فهم آید نه به عقل نقل باشد، نه چون نقل جان عام همچون چون نقل از مقام تا مقام هر که خواهد که ببیند بر زمین مرده را میرود ظاهر چونین مر ابو بکر تقی را گو ببین شد ز صدیقی امیرالمحشرین اندرین نشأت نگر صدیق را تا به حشر افزون کنی تصدیق را پس محمد صد قیامت بود نقد زانکه حل شد در فنای حل و عقد. زاده سانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر آیان، زو قیامت را همه پرسیدند، ای قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال می گفتی بسی که محشر هش را پرسد کسه، این گفت آن رسول خوشپیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. همچنان که مردم من قبل موت، زن طرف آوردم این سیت و سوت. پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. تا نگردی او، ندانی تمام خواه آن انوار باشد، خواه زلام عقل گردی، عقل را دانی کمال عشق گردی، عشق را دانی زبال گفتم برهان این دعوی مبین گر بودی ادراک اندر خورد این هست انجیر این طرف بسیار خار گر رست مرغ قنق انجیر خار در همه عالم اگر مرد و زنند دم بدم در نز و اندر مردنند آن را وصیت ها شمر که پدر گوید دراندم با پسر تا بروید عبرت و رحمت بدین تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین تو بدانیت نگر در اقربا تاز نز او بسوزد دل تو را کل آتن آت آن را نقد دان، دوست را در نز و اندر فقد دان. ور غرزها این نظر گردد حجیب، این غرزها را برون افغان زجیب ور خشک بر عجز میست دانکه با آجز گزیده معجز است، عجز زنجیر است، زنجیرت نهاد، چشم در زنجیر نه باید گشاد. پس تزر کن که ای هادی زیست، باز بودم، گشتم، این ز چیست؟ سختتر افشردم در شر قدم، که لفی خسرم ز قهرت دم بدم، از نصیحت های تو کر بودم، بودش کندعوی بودگر بودم. یاد سنت فرستر یا یاد مرگ، مرگ مانند خزان تو اصل برگ. سالها این مرگ تبلک می زند، گوش تو بیگاه جنبش می کند، گویدن در ناز از جان آه مرگ، این زمان کردت ز خود آگاه مرگ. این گلوی مرگ از نعره گرفت، تبل او بشکافت از ضرب شگفت. در دقایق خیش را در بافتی، رمز مردن این زمان دریافتی. تشبیه مغفلی که عمر زای کند و وقت مرگ در آن تنگاتنگ توبه و استغفار کردن گیرد به تعذیت داشتن شیعه اهل حلب هر سال در ایام آشورا به دروازه انطاکیه و رسیدن غریب شاعر از سفر و پرسیدن که این غریو چه عی است روز آشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب گرد آید مرد و زن جمع عظیم ماتم آن خاندان دارد مقیم ناله و نوحه کنند، بکا شیعه آشورا برای کربلا. بشمرند آن ظالمها و امتحان، که از یزید و شمر دید آن خاندان. نعرهاشان می رود در ویل و وشت، پر همه گردد، همه صحرا و دشت یک غریب شاعر از ره رسید روز آشورا و آن افغان شنید شهر را بگذاشت و آنسو رای کرد قصد جستجوی آن هیهای کرد پرس پرسان می در افتقاد چیست این غم برکه این ماتم فتاد این رئیس زفت باشد که بمارد این چونین مجمع نباشد کار خورد نام او و القاب او شرحم دهید که غریب من شما اهل دهید چیست نام و پیشه و او تا بگویم مرسیه زلطاف او مرسیه سازم که مرد شاعرم تا از اینجا برگ و لالنگ برم آن یکی گفتش که هی دیوانه تو نی شیعه ادوی خانهی روز آشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرن بهست پیش مؤمن کی بود این غصه خار قدر اشق گوش اشق گوشوار پیش مؤمن ماتم آن پاک روح شهرتر باشد زه طوفان توفان no. نو نکتا گفتن آن شاعر جهت تان شیعه هلب گفت آره لیک کو دوره یزید کی بودست این غم؟ چه دیر اینجا رسید چشم کوران آن خسارت را بدید گوش کران آن حکایت را شنید خفته بود استید تا اکنون شما که کنون جامع دأریدید از عذا پس عذا برخود کنید ای خفتگان زن که بد مرگ است این خواب گران روح سلطان ز زندان بجست جامع چدرانیم و چون خواهیم دست چونکه ایشان خسرو دین بودند وقت شادی شد چوبش کستند بند سوی شادروان دولت تاختند کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک گاشو و و شاهنشهی گر تو یک ذر از ایشان آگهی. ورنه آگه ای براو بر خود گیری زان که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت نوحه کن که نمی بیند جزین خاک که هن ور همی بیند چرا نبود دلیر پشتدار و جانسپار و چشم سیر در رخت کو از مای دین فرخی گر بدیدی بحر کو کف سخی آن که جو دید آب را نکند دریغ خاصه آن کودید آن دریا و میغ